Wi <laughs> some اول به خودی و بهتون ندادم نگینطور خدا آقای دکتر ما جونم و به جون بابام بسته است متاسفانه لخته بزرگتر شده این عکس قبلیه تو عکس جدید کاملا مشخصه علاته بدون مطابقت هم میشه تشخیص داد که لخته بزرگتر شده ولی این عکس گویه همه چی هست ببینم خودتون ازش نگهداری میکنید بله به ازش پرستاری میکنیم نه خوب نیست چرا یعنی باید بستری بشه؟ نه، احتیاج به بستری شدن نداره. ولی یک نازش مراقبت کنین بهتره. چرا؟ ببینید بیماری که دوچاره اختلال حافظه میشه، فالته فعلتان... نه اونقدر زیاد که باعث استراحتش بشه. فعلت دور برشم باید کم باشه که اون بتونه حافظش رو بازسازی کنه. من دوباره براش دارو مینویسم. سعی کنید یه یهچ اشاوبت ازش نگهداری بکنین. در ضمن، یه سری دارو مینویسم که پرواز ممنوع است. حواستون باشه. شما که هنوز اینجا نشستی الان شماره منو کنده نمیتونی حرف بزنی اشکالی نداره که منم مثل تو بودم کلید خونه رو میرشتم به تاخچه لادم میرم آتلس خونه هم یادم میرف منو پیدا میکردن میبردن کلانتری بچه هم میبردن دنبالم منمیبردن خونه حتی اسم زنه و میادم بیدم اشکال نداره خوب میشی باستی دم در حواسن بهت بود خوب خویتو زده بودی به اون را بالاخره درگو شده شد من برم پیر من باید با مغز دنبل بزنی تا خوب بشه بابا هیچ چیز نیست. روز در روزم حال داره بهتر میشه. یه دقیقه رو میگیری من ببینم کلید ماشین کجاست؟ ببین اینجا ببین چرا لفتش میدی؟ خب هر چیزی میذاری توی جیب دیگه اینجا رو نگاه کن. خیلی خب بذار خودم پیداش میکنم. بذار ببینم. ای... چه سرو جاش نذاشتی؟ نمیدونم. دونم. اینو ها پیدا شد. بیا. نگاه خب. کن. باباکو. ای اه... الان که اینجا وایساده بود. بابا. بابا. بابا. بابا. ای وای وای ها. اونجا رو؟ دارم این دنبانه او خانمه با با خدا مرگم بگیلوی، بابا چی بابا چی شد؟ خوبی؟ چیکار کار بخواهی؟ چی شد آقا؟ چی کار بی کاری من خاری نکردم، پرسیدم، خودشون رو افتادن بابا داد هست داریم؟ هلوهی بمیرم، ببریمشون آی سی او رازت نکرده؟ هیچی نیم، خوب میشی. ای جانم گربونه بابای خوش سیپم برم اللاهی نخند حباسه دجل روت باشه نمیتونم نخندم خانو من رو یاده چی میگو میخوایم ببریمش آی سی یو کنم بیچاره خودش داشت قلبش از کنده میشد خب من چیکار کنم اول شما رو برسونم یا اول برم دنبال روشنه لازم نکرده بریم خونی ما اونجا جمشی زن بزن شاهرت بیاد اونجا با؟ برای چی؟ مگه نشنیدی دکتر چی گفت بریم جمشی ببینیم با چی کار بکنیم بلی بابا آها بزن من برم گفت عباسه چطورن؟ قربونه؟ بابا جونم ایجال هستم بابا هستم میبینم با. با کردی. بابا بزرگی تو با بچه ها رو ورده بر پایین خونه خانم رضی کوریا رو ببینن همون جا به موتو من خودم بیاب دنبالتون اگه یکی از بچه ها بیاد بالا من میدونم اتو آ چرا؟ مهزه احرام چشم خیلیتون دفرمه عباس اینقدر دلم برای اون آوازهایی که برمون ما میخوندیم شده هر شب دارم از خودا میخوام که یه بار دیگه اون صدای قشنگ رو پشنن باقا عباس باید چی کار کردیم کودسیلا هم شاعر شده کجا؟ نمیتونی بری بالاها با بیمونی اونجا اینجا ما تو اینجا چی کار بکنیم آمامان گیرداد هم شد من اومدم اینجا. داری بالای من منو ببین بالای موضوع خیلی مهمی اتفاق افتاده خب تو الان بیا بریم تو بالکن گوش بدی ببین چی میگم چون من هرچی باشه گوش واسه تام نفهمیدم بالکن آره دیوانه شدی آره ببین من میگم بالکن خیلی موضوع مهمیه از تو بالکن اینجا میتونی بری تو بالکن خودمون تو فکر من المم کم از جیبرم تو بالکن خودمون آره ولشو من نمی تو بالکن به کلامی که بابا رو بردیم دکتر حالش بدتر شده دکتر گفت باید یکیتون تقبل کنه 6 ماه از بابا نگهداری کنه ببینیم حالش بهتر میشه یا نه به خاطر تعمیرات خونه من نمیتونم این مدت از بابا نگهداری کنم خودشم دشم میشه کنکور احسانم هست اوه اوه اوه. پار سارم به خاطر که همه این کار رو انداختیم دوشش خب کنکور قبول نشد بابارم که میشناسید ما انشاءالله یه جا بند نمیشه مدام باید یکی مراقبش باشه بابا ما شاءالله اونم که میدونی منم که تو شب سر کاری سهرام که دبیرستان تفلکی میونه کی احسان بنده خدا اجوش گفت کنم هیچ کار دیگه به جز درس خوندن نه. با اتفاقن کار درست نمیکنه سال سر نمیشه سوزی بعد خیلی سخت میگیره باباخه خب بچه طفلک راستشو ما داریم میریم کیش ولی اصلا اشکالی نداره به مازیار میگم یه بلیط هم واسه بابا بگیره اونم با ما بیاد کیش بعدش هم برمیگردیم میاد میمونه خونه ای ما شش ما لازم نکرد اقل کل وا چرا خب میاد با ما کیش یه هوایی میخوره برمیگردیم میاد خونه ای ما شش ما میمونه بیسکلتت برای خنگ تنگ شده خوب خودت متبه دکتر بودی مگه نشدی گفت بابا پرواز ممنوعه ما میخوایم ام پیرمرد رو سوار هواپیما کنی بیسکلتش بدی از میدونی چیه؟ هر موقع بابا خونه شما از خروجیش، یا روانه، یا تفلک کاملاً مسدوده. صد دفعه از دختره چه گفته به جای نهار نشستیم و هم میگه پفک خوردیم سن افری اگه مازیار رو نباشم که این دختره دو ماهه بند خدا زردی میگیره میمیره دور از جونش خب، الحمدلله تکلیف معلوم شد برگشتیم سر همون ماجرایی اینکه که پسر بزرگ و وزیفهشی نه که باباشو نگه چرا اینقدر موضوع رو میپیچونی پری جان؟ آقا را می خب خانمش باردار حقم داره پرستو جانم که پدرکشی حرف نداره آقای حسال جنبالی هم که کنکور داره رامین پارسالم رد شده دیگه بدتر میمونه کی؟ بنده خانم بنده در خدمت شما هستم حرفی ندارم بابا رو نگه میدارم فقط سن من شرطش اینه که برای هر کاری که میخوایم بکنیم نفر اول ما نباش همین تو که چاقوی زنجانه سر تو بریده بخی خود جوش نزن نخیل میخوام این چیز دیگه ای بگم میخواستم بگم بابا رو شیش نو بذاریم آسداشگاه سال مندم چی میشه چی؟ واقعا که من درست یعنی شما میخند باوارو بزنین خالص سالمندان نه نه سالمندان چیه من مهنوش رو میذارم خونه پدرش اینا خودم بابا نگهداری میکنم سالمندان نمیخواد رامین اینجان این چه کاریه بابا یعنی آخه مگه تو چه پیشنهادایی داری میدی من بسته فکر میکنین برای خودم خیلی راحت کلین حرف رو بخوام بزنم هیچ کدوم به خاطر من جونش برای بابا در نمیره اما الان بحث سلامتیشه هر باقی بابا رو میخوام ببرم دکتر همه چار ستونه بدانا میفته به لرس که نکنه کمکاری از ماست که بابا داره هی مدام حالش بدتر میشه نمیخوام یه روز که از خونه میاد پیشم هم ببینم بابا دیگه منو رو نمیشناسه مثل یه به نگام میکنه بابا آلزایمر نداره که حالش خوب نشه اگه یه جای مناسب بره درست حسابی بهش برسن حالش خوب میشه. برای همینم هم میگم که بزنیمش یه جای ببینیم چی میشه تازه هر روز میتونیم بهش سر بزنیم که اونم احساس دلتنگی نکنه فقط باید یه جایی عالی باشه من پرسجون کردم یه جایی مناسب پیدا کردم فقط هزینهش بالاست که به خاطر همینم هم گفتم بیایی بابا سون خب به رویا، بکردن؟ چی برم میگم؟ ای روشنه، تو کجا بودی؟ بابا با روز کنم میتونده چی؟, چی؟ به اینجا ببینم این همه خودمو کشتم و این بچه زودتر همه چی رو فهمیده اینو خجالت نمیکشم، بیا تو بدم کن رویاه. بدم کن میخواه من هم به چه جلتی میخواهنم چین کاری کنن آرون هلا مامان یاد یکی میکنه مامان تو عمه منه بابا عباسم پدر بزرگمه دلم نمیخواد ببرنش خونه زالمنده باشه باشه آرون باش هنوز که حرفاشم تمام نشده تا آخر شبم کلی مونده شاید پشیمون شدن بدبخ شدم تو چطه ایچ من بدبخ که هرچی بشه تا یه سال گونتانو رو تشیف دلن. اردسار شروع شد. ما جایی که با باباباسم خان به درن پیدا کردیم. این کجاست؟ یه جای خیلی با کلاس و مرتبه. جدی؟ از خدا رو شکر. اینقدر رو نظم و قاعده است که هیچ اتاقش بیشتر از یکی در روز خالی نمی‌مونه. من میدونم. خب. و این چرا نمی‌فهمه بیشتر از یکی دو روز یکی دو روز آه کیو اگه بابا باسو فقط یکی دو روز یکی دو روز دیر سر ببرن اون آتاقو میدن به یکی دیگه اون وقت دقیق سه ماه طول میکشه تا آتاقشون خالی بشه سه ماه بابا خیالتون راحت بشه مامون از اینا خیلی تیکی تاکی تره امکان نداره بذاره یه هم دیر بشه نه امکان نداره همچین فکری به سرتون زده باشه امکان نداره من درگیره همچین کاری بشم اتاقش هم چیدن ها من دیشب کلی گریوزاری رو تهدیدشون کردم حتی گفتم تا وقت تعمیر خونه احمد تموم بشه من میمونم کونه ازش مراقبت میکنم اما قبول نکردن ببین دارم به چی میگم اگه بابا اپاسو ببرن آسوهشکا دیگه هیچ راه برگشتی نداره ها احسان اگه مامان چند روز از بابا عباس دور بمونه اینقدر دلتنگش میشه که خودش از خرشه ایتون بیاد پای. چه نکنه دل و جیگرشو نداریم احبه تو ما بدون تو هم از پسش بر آیم اگه بهت گفتیم فقط خواستیم بدن قیرتت خافت نکنه بگی همه کارا رو ما انجام دادیم بعد تو فقط نقش لال ها رو بازی کردی من با یه حرفا خره میشم بهتر موقعی که میتونیم بابا رو بدونیم که کسی بهمون همون شک کنه بدوزیم وقتیه که دایی بابا عباس رو میبره بیرون دایرامین خیلی حواسش جمع نیست همین فرصت خوبی بهمون به میده تا نقشه رو عملی کنیم چی کار من باید انجام بدم؟ رسیدین آره آره دارم وقتی ما مطمئن شدیم دایی رامین با عباس و کدوم پاک برده زنگ میزنیم تا احسان یه ماشین دربست بگیره و دنبالمون بیاد تا اون موقع هم حتما موقعی کلاس رفتن شده و مامان شک نمیکنه. یادت نره بگی بعدش میری خونه دوسته تست بزنی. ما و من رفتن دیگه باید شما میره خود و تستم دیر نکنیو برگشتی باید تستاتو نشونم بدی آشد این قموز اخراف حرف سادم دیگه شده کجایی؟ اینجا بابا من تو ماشینام کشی بابایی ماشیم این دستو لگتو توی؟ وای ماشینو ماشینه اومدی؟ این شریخت و قیافه ایه نشداختی؟ همی که نشداختی یعنی خوب ریستا قیافه ایه نه؟ هیچه بابا خیلی با سرم خواستم ارزوم بشی با اینترنت دروس گرفتیم بایین بایین چه کسیمش کنون فرد و فرد از این همیان تازه این سه بامیشون کنسل کردم بایین دوباره بگی. نه نه دیره بیا بری شش رو بازی در بازی درمه یا ممکنه ببیننم خیلی دونم فکر نمی کنم ببیننم حالا چه ها کنیم؟ به چیز صحب می امورا بستنی بخریم ها؟ همین آه خودم من چرا بایده شما نابقا اعتماد کنم حالا این هم بستنی بخری چی؟ ای قهر بزن؟ میره دیگه همیشه من همیشه خودم انده قبلا هم می رفته بستنی می میرم می آورده عزیز اگه اجازه میدید دیگه با لشین بریم پوله منم بریسید به حساب آما به اضافه این ماشین دربست تو پوله کلاسیک که نرفتم آخه من سوال مینه یادم یه بار رفت بستنی بخاره یه هر بار دیوات برو بستنی بخاره؟ نقشه این قد دقیق ایه دهنه تو ببند چی گفتی؟ اوووو داره نیان تو برو سر گذار برو سر گذاری اومد خبرمون کن ای اومد بود بود, بود, بود, بود, بود, بود.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 باشی بخیر نشستی بابا یه ذری شورت کن دیجا بابا باز پاشو دیگه خب پاشو ببریش نشتو ماشین من برم ببینم دایی بابیم آنه دیده باشه که خورمونه سرم ما. یو بابا بذار دستی، بودو بودو پدرجون شما از کی اومد اینجا نشستی؟ یه آقای محسن اینجا نشسته بود نهیدی کجرب؟ پدرجون کم یه آقای محسن اینجا نشسته بود نهیدی کجرب؟ یه آقا بذار چقدر داریم؟ چیمیگه؟ ایه رفتشدم دینم میسرند بگم باشد که دعبا داریی ماری چی دعبا داریم؟ باشد که دعبا سوال کردم برایم حاجی او عباسم هیچه کردی؟ آه چه یه شدی؟ تو گل، بگو بابا چی شد؟ بدبخ شدیم با این نقشتو هم بابا عباس گم شد، هم خودمون لورتون، هم بگو آقای موسیمی بزن عباس موقعی، با که گم این چه که نقشه ای حالا چیکار زهر کجایی؟ ها؟ آره کجا؟ یه دسته کوبدو می‌نن کجا این؟ آره نه دیدم؟ اسان، بیا، بودای اینجا. آره الان می‌گم. بودای دیگه. بودای دیگه. یه کجا بودی شما؟ برو داره برو داره برو به بویه میدی خودو تو تو احشاب تنه ملافا ها هنوش بوی مواملی ها میده هره خودش آمان خیلی خوب دیگه اگه یه مرد اینجا بود این رفت آب گرم روشن میکرد که من مرکو نباشم با آب سرد صد لباس بشیدم الان اینو گفتی اون برخورد حالا که این حرفو زدی جایزت سه صدی رو آب روشن میکنم بردگردم چه عجب کپونی کپونی آه یادت فاشای معاملی ها نه چی که یادمه اسم درش خلوچلت بود دیگه به منم گفت ناغار من که یه گریه من. ببینا بگی جان کنم خیلی دیره بودو بیا بود وا آقا من از ایشون شکایت دارم شکایتم پس نمیگیرم این هم من پدرم میبرم پارک براش مشکلی پیش نمیاد الان آقا میگه امروز تو پارک غیب شده آقا ما به این کاری که شما میگین کاری نده اگر شکایتی داریم برید سافت رو به روی شکایت کنید نیرو انتظار آقا من از ایشون شکایت دارم این آقا هم که این آقا چه بلایی سر من آورده آقا. جای بیل قد یه هندونه روی سر همین ایشون که میگین برم کرده وقت شما نمیگذری جناب سرهنگ دستم به دامن قدرت راه خانم جا من مسئول پارک بانی هم جناب سرهنگ چیه داداش جناب شما الان برام حکم سردار دارین والا اخو پاپای من فراموشی داره زبون الان اتفاقی براش بیفته چه خاطی به سرمون بریزیم بعد زودتر پیداش بکنیم دیگه تا نرین اون طرف گزارش نکنیم ما نمیتونیم برای شما کاری بکنیم خیلی خوب مشکل باید شکایت حله رامین جان پاشو برو این سخمان رو بروی رو رو شکایت بنویس و بیام با شکایت حله <متصفح> مشخصاتی که گفتین رو چک کردین ببینین این تصفیر پدرشان این آقا خودشه ده. این بابای منه آره خودشه کجا رفته بعدش کو معلوم نیست چرا معلوم نیست این که هنوز تو پارکه خب نگاه کنی ببینین کجا رفته تو این راه رو چند تا از دوربین ها رو پرنده ها دسترس خارج کرد چی؟ آ پری جان این پرنده ها چغلیدن چغلی کردن دوربینشون تار شده تو این فرند تو بعض از راه روح ها پرنده زیاد داریم به خاطر این دوربین ها رو دسترس خارج میکنن خارج میکنن؟ یعنی بعد از اینکه اینا رو خارج کردن یکی نرفته یه دستی بکشه روی این دوربین تمیز بشه؟ خانم جان حیوانن دیگه من نمیتونم هر دقیقه آدم بفرستم دوربینا رو تمیز بکنم محافظم که میزارم لونه میکنن توش شما هم دیگه تکلیب موردتون معلوم شده پدرتون گم شده بهتره به جای وایستدن اینجا به پیدا شدنش کمک کنی ما هم اعلام مفقودی کردیم دستا شما در نرمه خسته نباشین واقعا ببینید ببینید معلوم اینجا آمد دستی سر بودم ببینید آقا دست نزن مالی افتا مابا ملی به من چی میگفت میگفت چلمک خیلی بد بود به چیداری بخندی؟ بگید منم بخندم بابا باز ماهیشم هم ماهی این که از اون سو گوز نگفتی؟ اوم غرام اینم از شاهکار جناب علی مغزم داره دهنم میزنه بیرون اخ ما این چجوری پیر مردتون شلوغی پیدا کنم یا خدا همینمون کم بود الان میخواد بارون هم شروع بشه علوی فرما چیکار کنیم بارونی شد حسن حواستمون در هوا نبود بیو بایچان شابه تو با خورمت هم بدم تو قرصتون رو که شب خوب تو احسان این احسان خیلی وقت اشتباهی بهتون نده به خدا فکر کنم به خاطر این احسان تاران خوب نشدی هرست پفانوم آخه من حق دارم گره کنم یا نه پری بر که لرفته تو ماشین آقا رزا خا اگه همه دور دور تو خیابون تو این هوا به چرخی پس کی باید بره کلانتری بهزیستی بیمارستان وا آقا مجیدین هر پا چی شما میزنی بیشتر پری تقصیر نداشت رفت اون ماشین که من نمیخوام نفوس بعد بذارم خود شما اگه یه پیره مردی که حرف نزنه پیدا کنید کجا میبرید نمیگی کی ببرم بیمارستان یه دعوایی بدن وقتی زبونش باز بشه بفهمن کجاست کیه خونش کجاست بعد بگم ما باید ببینیم مامان هم اینا میان یا نه باشه باشه برید دو ساعت که تو کشیده خید. من جلو ما نمی کنم دون رو سر بزنم خب ان بگو چیه بگو سرم میخوای نه شی بابا پس پیدا شدن چرا؟ انرلی کن تمشه چه چرا؟ مامان گناه داره. میگذاره؟ مامان عمره دست بیان بیرون بیرون بیرون تو دیوانه بود بات میگذره. مامان اون روز چطوری نبود در سجای میبینیم بیرون. بیم، همهمون ور میبینیم ساقه ببینیم. دیوانه ایم کار بیشکنیم. از آنگونه کار نمیکنیم. بریم از از بدنم بدانم افتاده بود بودیم زن میخوام. حالا خبری نشود. حالش بات شده که یادش نمیگیرم. آرتا اول زنی کرد، مشکردا. زایی، پری پری پری پری شکاتلاس تو دیگه هیچی نگو رامینا هیچی نگو اگه جناواره تو پارک می‌رفتی پیگردللی و بزن خوردن این بلا سرمون نمیومد. دو روز شنینا رفت قف ببرگوم کردن من نمیگم از قصد بوده برادر من ولی پی توجهی کرد دیگه بله ولی الان پیاده رفتن اینا زیر بارون جز اینکه سینه پهلو کنن کمکی میکنه که بابا با با دو نه. نه این هیچ کمکی نمیکنه. ولی پریه دیگه چیکارش می‌خواد بکنه؟ بگو تو اگه تو باشی. را با اینم سر مو بخوره قوزوالا. روز خانوم شما یه مسافر تو شکمت داری. آبی ماشینام دیو اومدی تو از بابای خودت بپرس سالا داش میچرخوندمو نمیدونم دو بار گوشی رو ریست کردم ولی هیچ فرقی نکرد این لاک گیر کرد برو بگه کلیدای کیو ببین بگو باشه تو دیر وقت بخوابت برگردم آها نمیخواد از این دروغات به من یاد بدی یادت نره قرصه بابا پس بدی ما یه یوم رورس میدادم برو بدی آکی و بادرای قوف کنی برو بتو... زنگ بزنی یه چیز بیایی رو بودم کنم شما میکنه داریم همه شده داریم نیکنی فقط چایی مونده بابا، با پیمان، پیما خوبالی دادا چه قلطی میکنی اینجا اینجا هیچ چی نداره بسی خورده با بچه ها تا تایی گراج گلیو پوچ میزدی بدم نکه احوالو دست بیرون کنورو تونیم بینیم واسه سلو وقتی ضرر داره همینجا میونیم قلیون اونو میکشیم تو چی این خیلی نادخی من چند شب جا ندارم آه. تو ماشین میخوا سفر میدی دیگه؟ او سلیم از خروازی من یه چیزی با حال پیدا کردم بایی سر گوشی ها بدیم بندون وازیه؟ نه پول وازیه سایرم پول وازیه دو هست من چند شب پوشی باق باقی میکنم مورای ما ماشینا نمیزده درس میخواد. آو امینه دیگه، پشیرگس شدی نمیتونی بخوابی دیگه. دهنتو بدم ببین چی میگه. یه خدا نشه قدیمی اونجا سی خالیه. خب از ازلی تا حالا یه مش ماشین آدمای پولدارو درست حسابی میره اون تو میاد بیرون. خب. خب عمر، الا به یه چیزی هست دیگه. آقا داش با تو 4 روز نیومدی بیرون. س... اون بار سر یه اون تو بودم. اما اون بار مطمئن نمی چیزی هست. بعدشام تو رسنه نه. پایی یا نه؟ اینوش پایی که اگه درست روز بزنی فیزنی پایه. گوی. انش بسم الله حسین کلم اینه یا اینه؟ اینه. آه پایه. شش. نکه باعثش دارم میمیره. اگه کنم شارجه بیارم چه تو آبا؟ چه تو آبا؟ علو علو کیپه تو چنان عبادی خنگ؟ یا یادم افتاد ببین برو ایچه قایمش که ماما نبینه علا؟ ماما گیر داده زنگزد خونه دوسته علو چجوره برم اونجا؟ دیوونه میخوای بابا عباسو تنها ولی کنه بری خونه دوستت؟ خاکی به سمم کنم گوشی ما پیدا کردی الان خدا به کنه بابا باز چگاه میکنه خوابه ببین من اه... تو تو به دوستت بگو که هر موقع مامان زن زنگ زد بگه که تو همه الان افتادی افتادی اومدی خونه خوب بعد هم زود پشو بیا بابا باز چی گوارتخوابشو دادی آره یه دقیقه گوشی یه دقیقه با من ببین با این گوشتو دیگه فکر نمی بیدارشه خب خوبه دیگه پس باشو بیازو باشو خبروی ها اگه دیگه سرکل کسی پیدا ناشه میهیم تو ببینیم چه خبره Duram zehir nefesince diyecek şuradan par ben ben duramıyorum balo. آتاش <تص> خال یعنی دریق از یه دونه کار که بگی یه آدم پولاره یه ساعت اینجا بود هیچ این کی؟ که که بگیش پیش توست درمه میپرسی ایشون این کی؟ چی میگی بابا این بگیش جب گرفت ناده داره بابا جان میدم نمیره بیافت رو دست این نه بابا چیکارش کنیم؟ آقا بپر یه ما داریش آه. داریش آه. الان بیا الان جا خدا بجوم آمد, بشوم. آمد. بابا جان بابا جان اینجا هیچی بهت هیچی بهت ندادن بخوری بابا جان اینجا چند وقت گشنهی گشنه چند وقته حامد می‌گم این بابا با حالا تا الان داشت قشوزه اتون کرد انهان دلوپی داره می‌خوره خیلی با. این این گوله شرکه کاری به شما نداره، شما راحت بزن آره بابا جام دو گفتی؟ من کیم؟ گفتم گفتم این من، من قلامشم اینجوری گفتم آره داداش دو به ما چی پیدا نکردی؟ نه بابا یه مشکل زیر پنزن اینو پیدا کردم این به درد این به درد سر تاش همه من مطمئنم یه کاسه زیره نمکاسه هست قطعه کاسه کاس باسه چیه؟ این بابا جوک داره آوردنش اینجا رژیم بگیره همین پسش بپرس ببین اینجا چی کار میکنه کی آورده تاییش؟ چی جوشه؟ شما اینجا چی کار میکنی؟ چی کار؟ درورت بوس میفرسته نه دوداش داریم اینجا کاری ندارم ورسلم سر رفتی اینجوری میگه آره شایدم هم دوسیدنم آره حتما دوسیدنش نکنه زیاد میخورده <تصفح> خورده <مزخربازی ده تصفح> مسخره اگه میخواستن اینجا زندگی کنه حداقل حد یه دو دست لباس راحتی براش می‌آوردن نمی‌آوردن این به قیافه‌اش میاد از این موی داره باشه الان اونجا ددا من میگه رذیلم من دستم بابا خرمایه چی چیه ما اینجا اومدیم پول بازی که نبود فقط شامونو خوردیم همین بله آقا بریم درد کارم رو بکیم خیلی خواهی حواسته توجه همکومن رو میرم تا هم ردیف کن بیا اشتراش بابا جان ردیفی ما بریم دیدی سپور ردیفت کنم اگه ردیفی من خیالم راحت بشه برم دیگه آره. خور بینید برم خور بینید برم عزیزا بزن بزن راحت بزن. بابا جان ردیف نباشی ناراحت میشه بزن بزن خود خون این اینجا چیکار میکنه مگه نگفتم اونجورا ردیف کن بیا ردیفوش کردم دیگه دادم شما پیاده شو پدایشون پیاده شو پیاده شید پیاده شو پیاده شو پیاده شو آقا یه دقیقه بنش آقا یه آقا آقا چیکارش توله آقا بوس آماده باش که اسنجونتو بوس بوس Bobamos Fu bueno, un Bobamos. کسی این کشون هست الان باید اینجا رو پلیس گروخ کرده بود این مور و ملق رو ملک میخوان اینجا خوب است اینجا که خیلی فچ فین چه چین خنهدار؟ تمرین میکنن با فامیلل ووزی شروع کردنا کجا میدون که این فامیلتونه چه میدونم با یه عکس تو بود شبیه اینا بود حالا شادم نباشه نمیدونم اما از چی که هست؟ من مطمئنم این یه خلاففیدارن مطمئن مطمئنم. بزن. آقا، آقا همه شکنه، یه کشمال این توی بازه است یه آقا شما با کولیوازی در میاری، انم بیدار میشه این بیدار باشه این کلب چه که زد، بیدار شدن که سهله مرگ مغزی نشه شانسا بردیم نفیگوزم اینا کولیان؟ نمه این یا رو غذا میدادن، نمیزوشم بخواه اینا پهی ما بیا همینجه خالیش کنیم بریم اینا میرن به پلیس میگن درد سر میشه ها الان که به اینجا کشیده که دیگه خالص نمی‌کنی. بوس پلیس هم یه فکری دارم. بموشم با باش نخوری، بچه‌هاش با این با. عجب سر را به هم چه سوزن میره؟ بایدارین بهشون بگی ممکنه برده باشن بشه ممکنه که برده باشن بشه نمیدونم ولی خودش قفله در رو کشیده باشه خب چی بدنم که پاری باپانه؟ حتا شب بلن شده ترسیده دیگه تو خینگم که را فشم در رو گفت کنی حال بایدارین بهشون بگی کی میخواد بهشون بگه؟ <مزار> چا میگی؟ باسم باسم من چه هرچی کاری کسی با زغرفه مال منه شما در جواهرین خسده شده ما از جلوان دختراتون یکی از شما بده من میگم بابا؟ را واقعا نمیتونی بگیم موضوع چیه دیگه نریم تا اون آدرس ما بعد دوباره پدر روزو هم بگردم نه نمیشاخه بعد بریم اونجا اصلا شاید پیدا کردن با با پاسم کمکتون میکنه آره جفه خونه بابا؟ آره بگه دارداریم چیه؟ مگه چی دید داریم؟ آره نه ها شما بیایی سریع پاک کنی محمرم تو تن دو خطت بگو هم اینجا چی کار داریم؟ نه بیای نه عمو آماده بریم آره ریزارفی مورسلا آره ولی به دلت بعد را نده با شماره تلفنی که گردنش اگه مشکلی پیش اومده بود حالا حتما زعی می من دلم خیلی روشنه. یادت هر سالی خونه بابا نزر می داده؟ مم. نزر کردم وقتی پیدا شد دیگه نزاریم بینش وقفه بیافته. ده. خیلی ده خونه بابا نیست. رسخه خبره هسه سلام اینجا اینجا باباباس اینجا بود خب بعد ما گفتیم بابا که شما هم که موافق نبودیم با باباس خونه خولسان هندان گفتیم که شما بیان اینجا حساب بابا الان کجا؟ الان اینجا نیستش. نیستش یعنی دیشب اینجا اما تا صبح دیدیم نیست گفتن... گفتیم که شما بیاید در درو که ببینید قفلشو خودشون باز کردن رفتن یا دزدیدن من من توزی میدم الان براتم ما میخواستیم به شما بگیم ولی فرصت نشد بگیم یعنی مامان میخواست با بب بابا عباس و خانه سالمندان بعد که مح... بابا عباس دیشب اینجا بوده دیشب اینجا ب... شما پارک دوست نه نه با با اسانسان تو اتاق خجالت میکشه بابا بودیم احسان تو اتاق خجالت حداقل تا دیشب با با اینجا با با با با الان با با با با با با با آئه میبای تو جغل بچه پشت کنکوری با این دوتا میایی بقل گوشن من بابرقاسو تو پارک میدازیم اینه اما گوشیم چونو تارلا کسی تربیت نکرده من خودم عدبت میکنم فهمیدی؟ خودم عدبت میکنم اما بده اون گوشه با ما باید اینه وکن، وکن وکن، وکن وکن گوشیم باشه، تو در کشفت و بحث درست حسابی نداره یه فشار بدی باز میشه اگه دستگیرش ضربونهش خم شده باشه یعنی خود بابایی کشیده اگر نکه بجنگه اینجا اینه پاندل توی این توی, توی کنی با دست ببینید کش شده یا نه چش یا mm خدا شما اینجا چکار کنید؟ تا وقتی نرسیده بودم اینجا صد بار به خودم گفتم بابا اینجا باشه فقط بابا اینجا باشه میبخشم ایشون اشکال نداره که دیشب چه خونی به جیگرمون کردن فقط بابا اینجا باشه به خاطر بابا میبخشم اتون ولی ولی حالا دیگه امکان نداره هیچ وقت ببخشم اتون نقف شکسته نزبونه کت شده آفرین رامی تو راه همه فکر کردم جاز اینکه که تو هم باشون هم دست شده باشی زمان. خوب تو بازی کردی آفرین خانجون به من ارتباط ا؟ واقعا که گند داری همه تو. بله مقیمی هستی بله شما یه چیزی دارم که دنبالش میگردی الو الو و اگه چیزی نمیگردین قطع میکنم نه سب کن بگو خوبه حالا شد ولی شرط داره ببین من این مهشگونی توپول میخوام انقدری که به شون یه آدم بگرزه دندونم هم گرد نیسته اما راستش اگه پرداخت نشه بود و نبود این آدم واسه ما چی حال میشه چه داری بگه؟ همین که ندیم 300 میلیون پول میخوام فردا هم باشه 300 میلیون؟ چیستد میلیون؟ چی؟ چی؟ چی میگه کیه؟ این بابا سیستد میلیون نمیارزه؟ من تا فردا این پولو میخوام بلیه بودو نبود این آدم دیگه برام هیچ فرقی نمیکنه کنه میدونین که چی میگم؟ اون پیره برد مریضه مراقه نشبشی من این نمیشه تا فردا به پلیس هم هیچی نمیگین میدونی که آزیز خودتو کل ایلو تبارتو دارم یه کار نکن که با سمون هم تا موشا اگه مردی با من حرف نه با بده بابا سیرابی به جای جوش سدنه برو پولو تا فردا جور کن سراغ شرفم بهتر از اون بچه فامیل لزتون بگیریم اصناس سلویس که شدین میتونید که بیش Halkenor. Koca. Dayı. Dayı. Ee dayı. dayı. dayı. dayı. dayı. بایدی رو توان کنی داداش شلوطی شادیت چقدر بیا بیا بیا ازب اگرود بیا ای ای چرا اینجوری شده چیزیش دیگه اینکه یه ساندی و رو و مشتم بازتر بدن یه نفر ودیل کرده توریش نشامد این نه بابا بباید شدی این بانیه داره بیا بیا بیا یادت رفتی زورش تو ماشین چیکارمون کرد ببین بیان تا چیزی شیست این کفشت هم میدنم. بابا کفش مخوره تو سرم تو این شره بیان کن بابا این تکریف کفش که معروی شد نم بارم لباس بگوستشو بیارم با بزرگ اگه خدا بخواد فردا از دست ما در بداری خلاص میشه اما من خیلی دلم نیز گردونم موندم تو کار این بچهات آقا این جور چجور آدم من خودم با یتیمی بزرگ شده. آرزوم بود یکی مثل تو بالا سرم باشی ببین این یکی از این آدم هایی که از مستر اومد بیرون هم داد اما بچه های تو اصلا این چیزا رو نمیفهمن یعنی چی؟ با بزرگ بعد از اینکه این ماجرا حرف نومردی و بی‌شرفی رو به مشاستوندم تو باور نکن خیلی چوکری آشو <تصفح> <تصفح> آه باشی میره دیگه؟ این که دوباره تگری زده که <تصفح> نخم بابا <تصفح> آقا چیز کن پاشو برو تو صرف فقط دفتی اونجا این پیرنه رو تکون بده این ها دیگه خودشو عادت کردن رو واسه باز میکنه <تصفح> مرک آقا رضا. رضا جان بله قریجان نمیخواستم جلو بقیه اینو رو بهت بدم زحمت اینا رو فردا نقدشون کن اینا چه؟ ما بابا به پلیس خبر بدیم آدم رو شوخی نیست والا اینجوری که اینو حرف میزنن بیشتر لاشخورم تا چیز دیگه همینا رو بهشون میدیم میگیم بابا رو بردارن بیارن احتمال زیادم میارنش می یعنی تو میگی اینا رو همینجوری بهشون بدیم هیچ جوری راضی نیستم بابا بیشتر از این به خطر بیفته اگه پای پلیس بیاد معلوم نیست رو چیکار چکارکن اگه قسمت بود بابا پیدا شد بعد پلیس خبر میدیم پول برگه خرج خیراتش میکنی اگرم برنگشت اش توانیه که بابت داشتن همچی بچه بدیم باشه چشم پره میگم بذاریم بچه ها بیان بالا من هرچی بهشون استار کردم بریم خونه ما راضی نشدم تو که تالا روی خوهری منو زمین انداختیم این باره باشه چشم پری جم چشم همیشه هم حق با ماها نیستم پری ما بعضی وقتها اشتباه میکنیم. کنیم یادت صحق گرفته بودی بابا دو روز تموم بالا مون تا خوب بشه همون ماما می گفت اگه عشق این دختر و پدر همینجوری بره جلو ممکنه هیچ خبری از رامین و پرستو نباش. باشه چشم من بچه ها رو با خودم میبرم ولی نذاریم اون رو به جای ما هم علمان واسه چیه اینه گلدون نشستیم اینجا؟ رفتن دیگه خب ببینم به پلیس خبر میدن یا نه؟ حالا فرض کن مثلا خبر دادن یه نه اصلا خبر ندادن خبر که چی؟ خبر ندادن که بریم شما همون تو میمون ای کلو خیر خورده تو ببینم بیا بیا خیلی خوب بخواب با باجم بخواب خورد برم بخواب ویدار شدی میبرم و اب مغز بخوری بخواباره بریم خور اینو اگه سر خودشون خودشونو پلیس پیدا نشه راحت میتونیم بریم شب اون تو بمونیم تازه به پلیس هم خبر این تو باشین میفهمیم من قربون خودم برم داداش تو همینجوری غلاب کردی که شصت مال نخورده دم تو زندون بوده دیگه ببخشید پروفسور ببخشید استاد بفرمایید شما نظر بدین میخوایی ر مرد وایدیم تو خیابان رو دور دور کنیم؟ اگه به حرف تو باشه 2 ثانیه گرفتن تو گونی میبرنمون. چرا این کارا رو بکنین بکاری؟ خب کمرمو قايمة میشه؟ کمرمو خب می این تو قايمة میشیم؟ بیا بیدار شنده ولی خب دیگه بابا چند دختر سومارو خوردگری. بابا اینا اگه هر کلپوارم باشن یه درصد اتومان نمیدم منو تو اینقدر اسکول باشین که شب بریم تو لندن بور به کابیگ. باشه میریم این تو فقط اومدن گرفتنمون ار ار میکنیم خوبه؟ بس همت. بیا که هیچ خونه خود آدم نمیشه اونجا بیا دیگه بیا بیا دیگه یه آلمه قرص اونجا پیدا کردم یکی دو برقش بدم بخوره این شرط حالش رو برا ها چی میگی بابا روانی بده من چیچیه که دو برق ایما دادا اینجای زر خوفه ببین حالا من کی گفتم اینجا پلیس رو بریزم ما رادر رو نداریم گیر میافتیم قربانت آقا این سق سیاتی دو بگیر بگیر آفه دیگه پیر وردی که خوابید آره فکر کنم خوابیدا آره. ما هم اینجا دمه هم در جامونو میندازیم که صدا اومد بشوریم پول دونم که گذاشتم گوش تو در دیگه دیگه نگا اون چی هیچکی هم ندید ما اومدیم تو این خونه با آره این یکی مطمئنم چون خدام اینو عقاب havasam بود کسی ندید اگه پلیسا هم بیاد ما میشلیم از همینجا هم میپیچیم میریم بالا ولی من بعدا میام چی زهرمو به اینا میریزم دست بیا بابا جا اه این خیلی خوبه این بابا این خیلی خوبه سبونه را رو انداز من دیرم شده باید برم بابا چی درست کردی دادا میگم نباک فرطال اینا همه ردیفه دیگه آره زدی دیگه بله درسته درد نکنم این فیره دیدی دیده چه گاله من میگم دیگه اصلا پسش ندیم پیش خودمون نگلش دارین بابا مسخروازی دار نه یار به این فهم الان که اومد اینجوری کن برای چی؟ آقا اومد اینجوری کن دیگه آمد بیا برم از کار برای آقا اومد دست تو اینجوری کن یه دقیقه از دیگه آقا دارم یاد دارم آردارم آقا آمد آقا پیمانمونه پیمانمونه بگی بگی بالا بگی بالا پیمانمونه بالا بالا بالا یه بوسم بزن یه بوسم بچسمو بشاره بابا جا این دیگه ساعت دهن افتاد دیگه بیا آره بیا بابا جا بیو افتاد دیگه بیا آره بابا جا کن شما برو سمونه تو بخور من رفتم فیما بله خوی دو نقوه سمونه بیزدی برد می رفتی؟ کار دارم برد برم اکسی رفتی از این بابا ببین امکانات که نداریم ولی ببین چی گرفتم ازش فیما نداش؟ یاد الان داری پول ها رو بگیری این پلیس مو اینا چیکار میکنید اگه اون نباشه رای بدهن پلیس هم بیاد گیرن میوفتم بعدا بهت میگم ایول آقا ها رو ببین چی شده خوشگل و مشکل خاک تو اون سرت کنند آخه این شد عکس این عکسو تو گرفتی به گوشی رو چرا میندازی بابا نمیخوام اصلا تو عکس بگیری میشه بخوام دیگه نمیگیرم خوب سیکار اوجا تو چیکار داری میکنی مسئله خودت روده میکنی اسلام نبینم چی خبر اینجا آه هلو پول جو شد ببین داداش من من فقط تونستیم سی تومن جور بکنم یعنی فقط همینقدر واسه اون میرسه حالا خود مسخره در ها املا دلت میخواد این پیره مرده بمیره آقا مسخره چه چرفیه میزنی ما برای همینم کلی چیزمیز فروختیم تونستیم جور کنیم خوب گوش کن چی میگه؟ یعنی دیویست و نوود و نو میلیون هم قبول نیست سی ببین برادر من من نمیدونم پیش خودت چی فکر کردی ولی ما همچین آدمای هم آدم نیستیم یعنی خدا شاهد اگر الان جلو چشمونی همچین چکوله گدید میکردم چیش با طول درمان بگیری دلت میخوادیم پیره مرتبه میره بشه این رسخورش ها خور. ببین یه مو از بابای من کم بشه من میدونم و تو خود چی میدونم آس آس الو آس... شو... الو بابا من سی ست تومن شاید شداشم اگه چقدر زدم نکفت سینی میلیون آقا سینی میلیون پراید فکرستانی میده دردار حالا دیگه جواب نمیدی از کروچ خب من مرد نمیدونم من اینجامینی. بذار چرخ ای ما کوینا زدی دیگه تعقیبت نکنه. بله، حسام هست ای بابا. باشه، یه گوشام میار می‌خوریم. شما دیگه همینه دیگه بخور. به نیات شیشلیک بزن ببین چه طوزی میده. بزن پیراردو کو. در چرت و پرت کردی؟ باشه، را می‌خوردت. چرا خوابیده. هم دولوشو گذادم، هم قزرشو خوندم. خوابه خواب. به من. به من شیشلیک. باز گیر نده. بذارش. به من چی باید کرد؟ از اینجا؟ آره. بعدم تختش چرختو نیم. یعنی تلوص؟ آره. آه... دیدی گفتم نمایه پیازدارم. یه دنیای کرونی دیگه نداشتم. دانشگاه. یعنی یا... بیفروشی میشی؟ با تو چرا میفهمی. من میگم یه دونه یه قرونی ندارم نون نداریم بخوریم تو نوم نیمفه خب معلومه میفروشیمش آمون بگم بفروشیمش بتر ازم روشن بوده تو اله این عجب بچه بر رویه الو تو چرا حرف حالید نمیشه من گفتم 300 میلیون نه سی میلیون ای به درک که را تو نسجور کنی ببین اگه امشب پول جور کردی کردی نکردی یک کاری میکنم که پدرات افل و کاپلینو بزرم اصلا کاری میکنم از گوشنگی و تشنگی بمیره ببین اسکروچ این آخرین باره که صدای منو بدون پول میشنوی یا خرفم چوت این همینجوری با گوشی روشن الک و الک پوشی میومدی خونه اره تو حرف مفزن بابا حواست باشه من سیم کارتتو بپیچونم یا آره داداش زودتر بپیچونش خیلی نادخه داخل. پری میگم وحش خطرناک نشه بذار همون 600 میلیونو بهشون بگیم، بعد زنگ بزنیم به پلیس. تو نگران نباش، تو را خودم بهشون زنیم. با روی بگیر باشیم زد آقا زن زدن الو الو اسکروش تو بردی همون سی میلیون منطقه بدون دوز و کلک بدون پلیس. ببینی اگه بخوای آدم فروشی کنی به پلیس خبر بدی موتاین باش من زودتر از تو میفهمم. اون موقع همه چی عوض میشه دارد به زنگ زنگ. گرگی میکنی؟ نه دوش. درم رده انجوشیم رو پاک میکنم. که تو همه جا رو دست میزنی. باکساتی شبود. باشه. باشه من برم یه تلفن بزنم. بیا. برو. کارتو کنزد بیا. می‌وندی اگه می می‌کردی جونت در نمی‌رفت اوه زینم پاکیش کنه با بزرگ با بزرگ وقت کاره باید نظافت کنیم این دره قفله با بزرگ باش ولنگه زوره دیگه او کوچیاری دست دیدم یعنی که باقیش کنم. یا اینم باقیش کنم. دادا. باغوزو چلاب کن دیزنی. اماست کلابش کردی آره؟ می برمت قرمونت برا یه بقیل هم به ما بده بسرمان همین که من گفتم ای. آفرین آفرین چه عجب یه بار حرف درست دید چه با بسر من برف شادی البته توش آساره گردنه ریختم از خیلی بهتره چش خور میکنه اینم منو بردم ببین بهش میاد دستکش برقی ساخت خودم تشتیم اوی مگه داری میریم آزبارشگاه پاس کنیم از همه بهترش خمینه چیه؟ این با تو سنتیه قبلانه باش بوش میکن بودن که خیلی بهتره بیدن. آها تو رو خدا گمش نکنی آ. موضوع مرگ و زندگی خراقا بیا رو بیو. ای خدا نشونی آتیش کن داده آتیش کن که بداخت شدی گواش بابا بهشی روشن کن روشن کن برو داده برو چه مرگته چرا شلوک میکنی بابا پیریه زد تو سرم در رفت برو دیگه یعنی خاک تو سر که فقط لب و دهنی ها اپس یه پیره مردم بر رای مدی بابا تو نمیدونی اصلا این ضرب دست از این سنو سال ویده دادش بابا برو برو برو با خیلی وقت اینجا بایی ساده باید اصلا ماجره درکار هست یا نه اگه اونی که تحویل میگیره همین برا باشه چی؟ همین آروم آرون تو کنون قصد باشه ببین از ماشین بیادشو داری میرسم تو دایی کدوم؟ همون ماشین سفیده از وقتی اومدیم همونجاست ای اونه نوش. ناش آقا شما یه لحظه تشریف وارفی نکردین خودتون پلیس کلانتری بفهم چی بابا حالا دیگه عسكرو چند واسه ما امور کلانتری شده ببین من خودم علی خلافم عسكرو همی تو همین که داد میزنه دزدی میگه پلیسم بابام کجاست بفهم میخاش یا خدا آقا من من معذرت میخوام من من مخلصم میبینی شو وای میخواد دایی مظور سوار ماشین کنه یا برای لبایی سر موم نیاوردی؟ وای بوی؟ حالا ناریم دایره مورد است؟ بوی بابا؟ اصلا متوجه نشدم شکست اول من مخلص نیره شریف انتظامیم است. شکست ابت؟ ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای نگران نمش دوشمه الان خودم چشم این دوزمه اینه قردی باست پیداش میکنم این میکنی نگران نباشو کهیر میزنم نه با الان موضوع این که این پیداش میکنی این دیگه الان چشم این دوز الان آف چوت رفتو زمین همین همین نگران نگران خودش خودشو بابوزور بابوزور یه دقا باست چرا سه دوش میکنی خود گرمی راست کل بیا یاخ لو رشت پوت چ او بگی به شما بگی بشیم دنبالش برو برو برو کجا کجا داداش seni mirim داخل دهلی کار درم آقا نمی شه تایی بلیط تأیید. بابا اون رفتتون چی چی بلیط تایی کن یه دقیقه ببینم میام دیگه. نمیشه آقا فقط والدین. رفت گرفتاری شد. چله چه جوری بده؟ عزیز دل ارزه قص ندوشید آقا این فامیل ما هم الان رفت داخل دیگه. نمی شه فقط والدین. فقط والدین. خیلی خوب. خیلی خوب آقا منو دارم حالا. همینجا وای تو خبر مرگت اگه اومد درا واسه جام کنم. یه دوش شوفت. برو دست رو برو برو. آلت کن چنه باگم بایدوش مهرده این باقا باقا حوز کنی بله بله چشد بسنی خیلی خواهده بله بله مورده من دیگه قلعت کنم بابا یه همچین جایی بزرم ببخش این داخل را داره آقا بیمیدی درست من با بچه بذارم اونجا چیکارش داری؟ ببین چه پیره مرد نازیه خب شاید دلش میخواد بکش دراشتی کن همین دفعه ساخن برای بچه ها باشه باشه باشه باشه باشه بدون بلیط دذری برن تو درست جوری نمی‌تونی. بیا تو. جون ندادش ندارم، لذيذم. بیا کارت دارم. خب اومده، بس. چی شد؟ ردش کردی؟ نه بابا اصاب شد، افتاد تو زمین. سانتیورتی، همه جوری دورش گشتم، نیست که نیست. من یه پیمون دادم. یه دیخیالیشی. منو فهمیده بودیم چی کار می‌کنیم، دردسر میشه با صونا. چی چیو دیخیالیشی؟ خب این کارتش شانس منه. باشه. بنده سر توش که اوه این که با ما باستن که بگردیم کنیم همین طور را برای آخه بریم باقه دفن بود دفن بشه ازتر اول شام شبو دوست ندارم ولی مزه بار دادو دستی درده کنیش دادو پیما دا دادو دا من پیداش کردم آقایی چه پذیرایی هم میکنه از خودش ببین من میبرمش قهر بخونه جلدی بیا آقایی چایی تو بزرد چشم. آره واقعا بریم اون قایله رو تمومش کنیم حالا همون بریم په کارمون خلاص بوله شو بریم بریمش. چیه جوری اینجوری نگاه میکنیم اینجوری نگاه میکنی که چی که به من بفهمونی ما شرف مرف نداریم که سایت برو سر بچت بود و ترخوش کشون کردی اینه وضعیتت؟ آقابتت شده آقابتی یزید حالا یه چی به من نگاه میکنی انگار از آسمون کسافت بارید و تمیز شما رو کذیب کرده پشن بودم بزرگم پشن بلند شد بشن نکنم آقا آزان آده خیلی بشی چی شده؟ بیرین بار بچ بیم امور داده ها مثل که اون دوتایی که من پشنشستن مهمور آه تابل نکن دیگه بیگم نکنه نرفتی سر قراری روزنی زادن پولیسی نام رد گرفتن اومدم زمانی که اونجا بودین کسی از هنسایه ها اومد سری بزنه همسایه نداریم نه چرا داریم زیادم داریم اونطور اصلا فضول نیستن. مثلا فضول چطوریه یعنی از آدم هیچ سوال نمیپرسن نه من اصلا منظور نداشتم ببخشیت منظور نداره اونجا با چی رفت آمد میکردیم با ماشین آه. با ماشین دربست شما هیچ میدونستید با این اطلاع ندادنتون به پلیس چه خطری ایجاد کردین؟ اگر تماس اون شهروند در رابطه با اون سطل زباله نبود، الان شما هم وچتون از دست داده بودین، هم ممکن بود برای پدرتون مشکلی پیش بیاد. بله کاملا حق با شما جا، میدونم چی میگید. این همکارتون لطف کردن، دیدن اینا بچه‌ن، تو چون سوء تفاهم شدن رضایت دادن. ولی من یه ارزی دارم. میگم میشم وصیغه ی ای چیز اینجا بذاریم. شو یکی دو روز این بچا رو اینجا نگه داریم. متوجه نمی‌شم. من میگم شو بچا رو اینجا نگه داریم، ما وصیغه می‌ذاریم، بچا رو نگه داریم، بلکه ماجرا ختم به خیر بشه. شما به جای این کارا بهتره با ما همکاری کنید که وضعیت پدرتون زودتر مشخص بشه. ده خب منم هم برای همین دارم عرض می‌کنم چرا سرنگ قربونتون برم؟ همین بچا باعث شدن که پدرم گم بشه. همینا باعث شدن که گروگانگیری بشه، تهاجم به پلیس بشه. یه کم دیگه بگذری میترسم یه ترور و مافیا و هواپی ما متوش توش در بیادم بالا به خودم برای همین عرض می کنم میگم شما یکید روزین بچاره اونجور میگرد دارین مام اون بر, بر بر بابا اقدام می کنم یه اکید فرستادن منزل پدرتون رو بازرسی کنم خیلی من یه کم یه کم تحمل داشته باشین مشخص میشه. شن چکا بگمم با, با تو همه پسیدم چیکار کنیم لالونی گرفتی؟ میگم باشیم بریم یا همینجوری اینجا بشینیم این هایگه معمول روشن پانون به دمون درم نمیرسه بلاخره آخرش کسی کاری باید بکنیم دیگه آقا از سر کجا معلومی دیم هست خاطر ما اینجا باشم حالا این همه آدم اینجاست شاید بسید که دیگه اومدن پس یکم دیگه اینجا میشینیم اگه نرم بیرون خبر بدن یعنی که با ما کاری ندارن با بزرگ اینوار خلاصید خیلی زودتر از اون که فکرشم کردن از ما بعدی دیدی علال کن خوبی که ندیدی اگه باد بعد حرف زدم ببخشید دلم از جای دیگه پر بود سر تو خالی کردم یطیمی <تصوح> ازش ما بشمین بابا یعنی چیه اما تو این چند روز دوباره عواشو انداختی دوستدارم <تصوح> حامد من دیگه چیزی و سا دستودم ندارم زندوم کمیش برام به سخف داشت اگه گرفتار شدیم و رایی بود تو پس حسینجو میان پیشت نداشت بند چکانم کنی؟ این چه با تو؟ این شکلیه؟ گفتم چه این... با تو؟ با ابزار که این داداش شما باین نسبتی داری. گفتم باین نسبتی داری. چیکاراشونی؟ با... با... من من فامیلشونام دیگه وقتی این بابای اینه منم فامیلشون فامیلشونم دیگه چرا پیرمرد منو شهر آوردین؟ این نکه این؟ این اینجوری گفتیم که این مثلا میتونیم باش پول لبیاریم این جواب میده دیگه برای اینه تو چرا حرف نمیزنی؟ این خجالت میکشه دیگه. یعنی تو کمی جواب نه بخو آخر نکه خجالت میکشه شما نگاه کنی اصلا آلم پدرشو به خاطر پول اینجیافه میکنه خب بعدم خجالت بکشه دیگه نمیتونه حرف بزنه این به شما چی؟ شما بیا وجود، بیا. هو زبوش، هو زبوش، هو بابوزوک اون خونه تونه طبقه دو دوبام دیگه باید بری بیا برو بسکرم نه نه نه, نه نه نه نه, نه. با بزرگ شما باید بری نه داداشت یه دقیقه بز اینجوری زایست بخاطره. بره سم آره. بیا آره ما این تمیزی یه بیشترش کف سابون بخواد برو خونه تون دیگه بابوزوک برو بسکرم های گرمونش خدا پیس بازک برو برو خدا پیس خدا خیوان درش هنگه زودتر این ماجره همه تش قط نشده بده یادی در گرفتنه بنا. size kendi gene baş başa miley. Verin dada, verin. تو تو مشکلت. چطاست؟ اوه اصلا. آ، اصلاً باکو تک تکسی نمی‌نی، سوتت چونه، موفق. اگه منم جای تو بودم، می‌شدم پیمان می‌بکشم. چه برسه به تو. می‌دونجات نکنه قربون شما برم سلام جان شما خوبه آقا دیدین اتفاقی کرد از شما ممنونم کجا آقا جون تشریف بر اونجا چنتا برگه رو امضا کن بچه‌ها رو ببرین من بابام پیدا شده. بابام پیدا شده روحت چای آمالو آمالو بله یک concerto da ieri o di بابا بابا